حکایت یکی را از ملوک مدت عمر سپری شد قایم مقامی نداشت وصیت کرد که بامدادان نخستین کسی که از در شهرن درآید تاج شاهی بر سر وینهند و تپویز مملکت بدو کنند اتفاقا اول کسی که درآمد آمد گدایی بود همه عمر لغمه اندوخته و رقه دوخته. ارکان دولت و اعیان حضرت وسیعت ملک به آوردند و تسلیم مفاتیح قلا و خزاین بدو کردند و مدتی ملک راند تا بعضی عمرای دولت گردن از طاعت او به پیچانیدند و ملوک از هر طرف به منازعت خواستن گرفتند. و به مقاومت لشکر آراستن فل جمله سپاه و رئیت به هم برآمدند و برخی طرف بلاد از قبض تصرف او بدر رفت. درویش از این واقعه خست خاطر همی بود تا یکی از دوستان قدیمش که در حالت درویشی قرین بود از سفری باز آمد و در چنان مرتبه دیدش گفت منت خدای را از زوجل که گلت از خار برآمد و خار از پای به آمد و بخت بلندت رهبری کرد و اقبال و سعادت یاوری تا بدین پای رسیدی این نمع الاسر یوسرا شکوف گاه شکفتست و گاه خوشیده درخت وقت بره و وقت پوشیده، گفت ای یار عزیز تعذیتم کن که جای تهنیت نیست، آنگه که تو دیدی قم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی، اگر دنیا نباشد درد و وگر باشد به مهرش پای بندیم. هجابی زند در اون آشوب تر نیست که رنج خاطر از در هست و گر نیست. مطلب گر توانگری خواهی جز قناعت که دولتیست هنی. گر قنی به دامن افشاند تا نظر در ثباب او نکنی که از بزرگان شنیدم بسیار، صبر درویش به که ب즐 اگر بریان کند بهرام گوری نه چون پای ملخ باشد زمودی